پیرمردی سه پسر داشت. دو پسر بزرگش بچه های شوخ و خوبی بودند و کارهای خونه رو انجام می دادند. اما پسر کوچکش ایوان که جوان بی آزاری بود وضع دیگه ای داشت. او یا در جنگل می رفت و قارچها رو جمع می کرد یا در خونه کنار بخاری دراز می و استراحت می کرد. وقتی پیرمرد حس کرد که مرگش نزدیک شده هر سه پسر رو خواست و به اونا گفت بچه های من شما باید بعد از مرگم سه شب متوالی اونم هر شب یه نفر از شما سر قبرم حاضر بشه و برام نون بیاره پدر مرد او را دفن کردند نوبت پسر بزرگش بود که میبایستی سر قبر پدرش حاضر بشه اما از ترس یا از تنبلی رو به برادر کوچکش کرد و گفت امشب تو به جای من سر قبر پدر حاضر شو در عوض منم یه نون قندی برات میخرم ایوان قبول کرد و نون رو گرفت و سر قبر پدر حاضر شد و همونجا نشست و منتظر موند. نیمه های شب زمین شکافته شد. پدر از قبر در اومد و گفت چه کسی به ملاقاتم اومده؟ پسر بزرگم تو هستی؟ حرف بزن چه خبر؟ سگا او اوم میکنن؟ گرگا زوزه میکشن؟ بعد از مرگم کسی گریه میکنه؟ ایوان جواب داد پدرجان منم همه حالشون خوبه جای نگرانی نیست؟ وقتی پدر نونشو خورد، دوباره میون قبر دراز کشید و ایوان هم از جاش برخاست و به منزل رفت. وقتی از جنگل میگذشت قارچ قارچها رو جمع کرد. در خونه برادرش پرسید، پدر رو دیدی؟ بله، دیدمش. نونشو خورد؟ آره، اونقدر خورد تا سیر شد. شب دوم نوبت پسر دوم بود که می سر قبر پدر حاضر بشه. اما او هم یا بر اثر ترس یا تنبلی اینطور گفت. ایوان تا به جای من سر خبر پدر حاضر شو و منم قول میدم که کفشای خوبی برات بخرم. بسیار خب موافقم. ایوان دوباره نان را برداشت و سر قبر حاضر شد و همانجا نشست و منتظر موند تا وقتی نصف شب شد زمین دهن باز کرد و پدرش از جا برخاست و آمد و گفت کی به ملاقاتم اومده؟ پسر کوچکم تو هستی؟ حرف بزن باز بز چطوره؟ از خونه چه خبر؟ سگا او او میکنن؟ زوزه میکشن؟ بچه از دوریم گریه می کنن؟ ایوان گفت، پدرجان همه حالشون خوبه جای نگرانی نیست. وقتی پدر نونش خورد، دوباره در قبر دراز کشید و ایوان هم از جاش برخاست و راه افتاد و از وسط جنگل گذشت و قارش ها رو جمع کرد. در خونه برادر رو پرسیدند: پدر نون خورد؟ ایوان هم جواب داد، آره اونقدر خورد تا سیر شد. شب سوم نوبت ایوان بود که میبایستی سر قبر پدر حاضر بشه ولی به برادرش گفت حالا دو شب که من سر قبر حاضر میشم امشب شما باید اونجا برید من میخوام کمی استراحت کنم برادرا گفتند رفتن ما فایده ای نداره دو شب تو رفتی امشبم برو خیلی خوب موافقم ایوان نان رو برداشت و سر قبر حاضر شد و همونجا نشست در نیمه های شب زمین شکافته شد و پدرش از جا برخاست و آمد و گفت چه کسی به ملاقاتم اومده؟ پسرم ایوان تو هستی؟ حرف بزن اوضا چطوره؟ از خونه چه خبر؟ سگا او او می کنند؟ گرگا زوزه میکشند کشند؟ بچه از مزدوریم گرگه می کنند؟ پسرش جواب داد پدر من ایوان هستم همه چیز رو به راهه پدر نان را خورد و گفت پسرم تو تنها کسی هستی که به حرف من گوش دادی و هر سه شب سر قبرم حاضر شدی و از دیدنم نترسیدی به خاطر این کار پاداش خوبی بهت میدم تا برای همیشه خوشبخت بشی. حالا این دهنه اسب رو بردار و به صحرا برو و صدا بزن اسب طلایی اسب عاقل و باهوش از روی علف ها و برک ها عبور کن پیش من بیا وقتی از پیش تو اومد گوش راستش رو به هد نشون میده داخل اون میشی و از گوش چپش خارج میشی اون وقت سوارش میشی تا هر جا که بخوای تو رو ببره ایوان دهانه اسب رو برداشت و از پدر تشکر کرد و حرکت کرد و به خونه اومد موقع عبور از جنگل های وسط راه رو جمع کرد برادرها از ایوان پرسیدند پدر رو دیدی بله او رو دیدم نور چو خورد آره اون خورد که سیر شد ولی دستور داد که بعد از این کسی به دیدنش نره یک روز پادشاه کشور اعلام کرد هر جوان شجاعی در صورتی که بخواد میتونه در قصر حاضر بشه چون دختر محبوب و بسیار زیباش بالای برجی که زیر اون دوازده ستون و دوازده برج قرار داره نشسته تا کسی که سوار اسبه ظاهر بشه و بتونه با یک خیز خودشو به اون برسونه و ببوسدش این سوار هرکی که باشه پادشاه دختر محبوب و عزیزش رو به اون و مقداری جهاز بهش میبخشه و نصف کشورش هم بهش اهدا میکنه برادران ایوان وقتی این خبر رو شنیدند پیش خود گفتند به هر حال میشه این آزمایش کرد اسب از های خود رو کاه دادند و اونا رو زین کردند لباسهای فاخری بهتن کردند و موهای سرشون رو شونه زدند و براه افتادند ایوان که کنار بخاری نشسته بود و اونارو نگاه میکرد گفت خواهش میکنم منو هم با خودتون ببرین تا شانس خودم رو امتحان کنم. اونا گفتن احمق جان به جای اینکه خودتو خودتون ناراحت کنی کنار بخاری بشین. به صحرا برو و قارچه رو جمع کن. بعد هر دو برادر سوار اسباشون شدن، کلاهشون رو تا گوش پایین کشیدن، زنان و فریادزنان چهار نل مثل بادی از اونجا دور شدند. ایوان هم دست به کار شد و دهنه اسب رو در دست گرفت و از منزل خارج شد همونطور که پدرش بهش گفته بود با صدای بلند فریاد زد اسب طلایی اسب عاقل و دانا از روی علف ها و برکای جنگل عبور کن و پیش من بیا بیان که کسی متوجه بشه فوراً اسب ظاهر شد زمین زیر پاش میلرزید و از سوراخ‌های بینیش گرمای مخصوصی احساس می و از گوشهای برف روشتش دود خارج میشد. ناگهان ایستاد و از ایوان پرسید با من چه کار داشتی؟ ایوان او رو نگاه کرد. دهنه رو در دهانش قرار داد و داخل گوش راستش شد. بلا فاصله از گوش چپش خارج شد و به صورت جوان بسیار زیبایی درآمد که کسی نمیتونست باور کنه. بعد سوار اسب شد. اسب چهار نعل به حرکت در آمد. زیر پاش زمین میلرزید و دم درازش ها و دره ها رو جارو میکرد و هیچ چیز نمیتونست او از حرکت باز ایوان به قصر همون جایی که ایده زیادی جمع شده بودن نزدیک شد. شاهزاده خانم بالای برجی که روی دوازده ستون و دوازده برج قرار داشت، کنار پنجره ای نشسته بود. پادشاه از قصر خارج شد و گفت: من به کسی که با یک خیز به کنار پنجره نزدیک بشه و شاهزاده خانم رو ببوسه، هم دخترم رو به عقدش در میارم، هم نصف سرزمینم رو بهش میبخشم. جوانهای دلیر های خود را به جهش و اما به قدری پنجره بلند بود که کسی نمیتونست به اون برسه برادران ایوان نیز خیلی سعی کردند ولی به نصف برج هم نرسیدند بعد نوبت به ایوان رسید او اسب طلاییش را به جهش و و با سوت و فریاد او را به پرش تشویق کرد ولی اسب به پنجره نرسید دوباره سوت زد از جا پرید باز هم نتونست به پنجره برسه ناچار برگشت و دور زد اسبش رو با زدن مهمیز تحریک کرد. آن وقت چون ای از جا پرید و خود رو به پنجره رساند و شاهزاده خانم زیبا و قشنگ رو بوسید. دختر جوان هم با حلقه انگشتری روی پیشانیش مهر زد. تمام افرادی که اونجا بودن فریاد زدند او رو بگیرید نذارید فرار کنه اما ایوان از نظر قایب گشت و معلوم نشد از شراحی فرار کرده. موقعی که اسب طلایی به دشت هموار رسید، همونجا ایستاد. پسر جوان داخل گوش چپش شد و از گوش راستش خارج گشت و به صورت ایوان قبلی، همون ایوان بیگونا ظاهر شد. بعد اسب رو رها کرد و به منزل رفت. بین راه ها رو از روی زمین برداشت و پیشا پیش با نوار بس و کنار بخاری دراز کشید. وقتی برادرها به منزل برگشتند، اون را رو که دیده بودند براش تعریف کردند. و گفتند در برابر قصر جوانهای بسیار شجایی به چشم میخوردند، مخصوصاً یکی از اونا با یه جهش اسبش رو به شاهزاده خانم رساند و بوسیدش. البته همه اومدن او رو دیدند، ولی رفتنش رو کسی ندید. ایوان در جای خود نشسته بود و در جواب گفت، اگه این جوان من بودم، ناگهان هر دو برادر با خشمون و راحتی فریاد زدند، تو دیوونه ای درست مثل دیوونه ها حرف میزنی احمق جان کنار بخاری دراز بکش و قارچات رو بخور ایوان نوار پیشانی خود را از جایی که شاهزاده خانم محرزده بود برداشت خونه فورا غرق در روشنایی شد برادرها رو ترسیدن و فریاد زدن احمق چکار داری میکنی؟ تو داری خونه رو آتیش میزنی؟ خلاصه روز بعد حاکم شهر تمام شاهزاده ها و توجرها و جوان ها و پسرهای شهر رو در قصر خودش به مهمونی بزرگی دعوت کرد برادران ایوان خود را برای رفتن به مهمونی حاضر کردند. ایوان به اونا گفت: خواهش میکنم منو هم همراه خودتون ببرید. آخه احمق جان چرا میخوای کاری رو که دیگران میکنن تو هم بکنی؟ مثل همیشه کنار بخاری بشین و غارش رو بخور. بعد سوار اسب شدن و از اونجا رفتن. ایوان هم پیاده حرکت کرد و به مهمانی رفت و گوشه‌ای نشست. شاهزاده خانم از میان ها عبور کرد و در صدت بر اومد تا جوانی را که پیشانیش مهر خورده پیدا کنه. همه مهمونا او را نگاه می کردند وقتی به ایوان که صورتش بر اثر دوده بخاری سیاه شده بود روبرو شد، قلبش به شدت زد. ازش پرسید: کی هستی؟ از کجا میای؟ چرا پیشونی و بستی؟ ایوان جواب داد: پیشونیم به جایی خورده. شاهزاده خانم نوار پیشانیش رو باز کرد ناگهان قصر روشن شد دختر جوان فریاد زد مهر من روی پیشونی این جوان خورده این فرتمون کسیه که باید با من ازدواج کنه پادشاه جلو آمد و گفت چه نامزد زشتی چقدر صورتش کثیفه ایوان به شاه گفت اجازه بدید تا صورتمو پاک کنم شاه اجازه داد ایوان از قصر خارج شد و دوباره فریاد زد اسب طلایی اسب عاقل و باهوش از روی علفها و برک ها جنگل عبور کن و پیش من بیا. بیان که کسی متوجه بشه، اسب ظاهر شد. زیر پاش زمین می لرزید و از های بینیش گرما احساس می شد. از گوش های دود خارج می شد. ایوان داخل گوش راستش شد و بلافاصله فاصله از گوش چپش خارج گشت و به صورت جوان بسیار زیبایی که تصور اون هم غیر ممکن بود، ظاهر شد. همه افراد تعجب کردند دیگه جای تعمل نبود چون بلا فاصله مراسم جشن و عروسی به وضع باشکوهی در آن کشور برقرار شد و پادشاه هم به قولی که داده بود عمل کرد این بود داستان ایوان